درود بر همه شما شروعندگان وفادار راژیو هالبورز خبرهای دانمارک در هفته که گذشت رو به سم شما عزیزان می رسونم با ما همراه باشید وزیر دفاع دانمارک می برکناری اسد واقع بینانه نیست فردیک وزیر دفاع دانمارک اعلام کرد که برکناری بسار اسد رئیس جمهور سوریه دیگر یک گذینه واقع و عملی نیست وزیر دفاع دانمایگ گفت شاید خواستار برکناری اسد باشیم اما باید با واقعیت آن روبرو شویم ما در حال جنگ با اصد نیستیم و افزود واقعیت این است که کمک هایی که روسیه در اختیار اصد میدهد موجبه گردیده که وی به سطح کامل متفاوتی از توان نظامی دست یابد زمین خوردن پلیس موتورسوار بر روی آسفالد خیابانی در شیلند موجب مصدومیت وی شد سخنگوی پلیس دانمارک از وقوع یک مورد تصادف در بزرگراه شمار شیلند خبر داد و گفت در این حادثه یک پلیس موتورسوار مجروع و راهی بیمارستان شد وی گفت با تماس شرفنده با سامانه 112 و دوازده دانمارک بلافاصله اوژان ساعت 7.47 دقیقه صبح چهارشنبه به محل اعزام و پلیس مصون به بیمارستان انتقال پیدا کرد. یک خبر ورزشی، دانمارک از رقابت‌های هندبال جهانی 2017 فرانسه حذف شد. در مرحله یک هشتم نهایی تیم مجارستان که ایمان جمالی هندبالیست ایرانی را در اختیار دارد به مساف دانمارک قهرمان المپیک رفت و در نهایت توانست این بازی را با حساب 25 28 بر 25 به سود خود به پایان ببرد و به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جهانی راه یابد. ایمان جمالی در این بازی چهار گل به ثمر رساند. تیم‌های حاضر در مرحله یک هشتم نهایی با هم به رقابت پرداختند و در نهایت تیم‌های نروژ، فرانسه، اسپانیا، اسلوونی، سوئد، مجارستان موفق شدند به مرحله نیمه نهایی سود کنند. همچنین دو تیم پایین جدول هر گروه در مرحله مقدماتی نیز برای تعیین جایگاه هفتم تا 24 هم به مسافه یکدیگر رفتند ترامپ تمامی سفرای دولت اوباما از جمله سفیر این کشور در دانمارک را برکنار کرد تمامی سفرای خارجی آمریکا از جمله سفیر این کشور در دانمارک اندکی پس از سوگنیاد کردن ترامپ به عنوان رئیسجمهور جدید از کار برکنار شدند این در حالیست که هیچ جایگزینی برای آنها معرفی نشده است آوس دانمارک پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2017 شد سالی هاست که پایتخت فرهنگی اروپا جهت رویا رویایی فرهنگی و پیشبرد یکپارچگی یک و اتحاد در اروپا انتخاب می شود در سال جدید میلادی شهر آوس دومی شهر بزرگ دانمارک به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2017 برگزیده شد. آوس دومین شهر بزرگ دانمارک و هفتمین شهر بزرگ در میان کشورهای اسکاندیناویس. جمعیت آوس بر پایه آمار سال 2013 برابر با 319680 نفر است. پایتخت فرهنگی اروپا یکی از شاخصه های پروژه های اروپا است. این پروژه در سال 1985 به ابتکار وزیر فرهنگ یونان آغاز شد ایده این بود که شهرها در سراسر سر اروپا در قلب زندگی فرهنگی قرار گیرند در تازه ترین ردبندی گذرنامه دانماک در رتبه چهارم معتبرترین گذرنامه جهان قرار گرفت قدرت پاسپورت ها در این لیست از تعداد کشورها که دارنده آن میتوانند بدون ویزا سفر کنند ارزیابی شده است. دانمارکی ها میتوانند به 155 کشور جهان بدون ویزا سفر کنند و در مقایسه با رتبه بندی سال 2016 موقعیت خود را حفظ کرده است. در این رتبه بندی شهروندان آلمان که میتوانند به 157 کشور بدون ویزا سفر کنند مقام اول را دارند. مقام دوم بین سوئد و سنگاپور تقسیم شده است که با پاسپورت سوئدی و سنگاپوری بدون نیاز به ویزا می توان به 156 کشور جهان سفر کرد. در مقام سوم دارمایک فرلاند اسپانیا، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده قرار گرفته. شهروندان این کشورها می توانند به 155 کشور بدون ویزا سفر کنند. استقبال لارس لوکه از ریاست جمهوری ترامپ ولادیمیر پوتین تنها دولت مردی نیست که میخواهد با ترامپ رابطه دوستانه برقرار کند. کاسموسن نخست وزیر دانمارک هفته گذشته در نامه های جداگانه خطاب به رؤسای جمهور سابق و حال آمریکا از های اوباما در در طول 8 سال گذشته تشکر نمود و از به دست گرفتن زمام امور توسط ترامپ استقبال کرد. فیلم دانمارکی سرزمین مین یا همان لند آف مین نامزد نهایی اسکار 2017 شد. مراسم نامزدهای نهایی 89 نهمین دوره جوایز سینمای اسکار در شاخه‌های گوناگون در حال آغاز شدند که فیلمی از دانمارک به نام سرزمین مین در جمع نامزدهای نهایی اسکار خارجی قرار گرفت. دانز و ترامپ هفته گذشته ترزامی نخست وزیر بریتانیا گفت که خروج بریتانیا از اتحاد اروپا یک خروج سخت خواهد بود و پایان هفته دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا ادای سوگند نمود. این دو از دیدگاه دانز پارک بانک میتواند اتحاد اقتصادی جهانی ایجاد شده از جنگ زمان جنگ جهانی دوم را برهم زده روسیه را رو از انزوای خارج و قدرت چانه‌زنی اروپا را کاهش داد. تحلیلگران بر این اعتقادند که علیرغم آرامش در بازار بورس، نگرانی‌های عمیقی درونی در سیستم بانکی دانمارک وجود دارد. آخرین خبر، امروز دانمارک یک ناب جنگی خود را برای حمایت از سربازانش در عراق راهی خلیج فارس کرد. قاسموسن نخص وزیر این کشور در حالی برای خدافیسی به بازید از سربازان این ناو جنگی پرداخت که پسرش در ارتش دانمارک در عراق خدمت میکنند. آقای قاسموسن در سخنرانی خود بارها از عنوان خلیج فارس به جای واجه های دیگر یاد کرده است. تندرستیتون پایدار عزیزان